اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم به البلد به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قسم به این شهر مقدس مکه و شهری که تو در آن ساکننی ووللییم او و و, و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اساعیل زبیه خلقنا که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست عليه احد. آیا او گمان می کند که هیچ کس بر او دست یابد؟ بد؟ میگوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کرده ام آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده است؟ ال ننجعلم عینن آیا برای او دو چشم قرار ندادیم ولی سن او وشفتین و یک زبان و دو لب و هد و او را به راه خیر و شهررح هدایتت کردیم فلقهحمل عخوابه ولی او از آن گردنهی مهم نگذشت و ما ادراک ملعقبه و تو چه میدانی دانی آن گردن چیست؟ فکرقبه آزاد کردن بردهای، او اطعام فی یوم دی مسغبه یا غذا دادن در روز گروس نگی یتیمن دامقربه یتیمی از خویشاوندان آوندان او مسکین دامتربه یا مستمندی مندی خاک نشین را ثم کان من الذین آمنوا و بالصبر و تواصوا بالمرحمه سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند اولائی که اصحاب المیمنه آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان میدهند وَالَّذِينَ كَفَرُوا و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند که نامه اعمالشان به دست چفشان داده میشود علیهم نار مُعصده برانها آتشیست فرو بسته راه فراری از آن نیست؟